سور دشت نویسنده دیوید جرالد سلینجر ترجمه آراز بارسگیان گوینده ارفان ابراهیمی کارگردان رازیه هاشمی اول. اگه اومدی به متولد کدوم شهرم و کدک چطور گذشته و مامان بابام قبل از به دنیا آمدنم چه می و چه می هم از این دیوید کاپرفیلد بازی ها بیخیال عذیتت نمی کنم راستش هستا بهش نیست تارف نکرده باشم اینا هم خمیاز آورن هم اگه به گوش مامان بابام برسه که از زندگیشون چیزی درز دادن بند خدا و بواسیرشون در میره اونقدر حساسن که نگو نپرس به خصوص بابا. نمیگم مهبون نیستن چون تو شک ندارم ولی خب زیادی حساسن. بعداشم قرار نیست این این پیر مردم بشنینم براتا سرگذاشتم بگم. فقط برای از بلایی میگم که دورآل که رییسمثل سال پیش سرم اومده و جونمو به لبم رسون و به بهلافی اینجا کشند به برادرم دیبی اینارو هم اینا رو گفتم تو هالیوود کار میکنه از این جای خیلی دور نیست اونقدر که تقریبا کل آخر هفته سر میزنه. شاید ماه دیگه که مرخص شدم بیاد با ماشین ببردم خونه. یکی از همین ماشین جگوار انگلیسی ریزه خریده که سرعتش به ساعتی و 20 کیلومتر میرسه چهار هزار براشاب بخورده حته چون خب پول در میاره زیاد مهم نیست. قبللا ولی این طور نبود. ویشه ماه که بود یه نویسنده این معمولی بود البته مجموعه داستان کوتاه محشری نوشته بود شاید اسمشو شنیده باشی. ماهیت نامری. بهترین داستانش هم همون داستانیه که اسم کتاب ازش برداشته داستانیه پسرکی که با پول خودش یه ماهی تلایی خرید و حالا به هیچ کس اجازه نمیده که به مایش ما نگاه کنه داستانش بعد جوری میگیره ولی حالا برداشته نفت هالیوود و خودشو به گند کشیده این سینما دیگه چه مزخرفیه واقعا ازش متنفرم اسمشم نیار میخوام برات از روزی شروع کنم که مدرسه پنسی پروپاویل کردم پنسی یه جاییه تو اگرستان تو ایالت پنسیلوانیا احتمالا اسمش به گوشت خورده باید تبلیغاتشم دیده باشی حالا تو ساعت تا مجاله تبلیغ میکنن مثلا عکس بچه خوشگلی رو میزنن که داره با اسم از روی مانه میپره یه توی تبلیغ میکنن هرکی ندونه خیال میکنن هر روز تو پنسی چوگان بازی میکنی. باور کنیدین تا حالا یه دونه ک رس و منتفا ندیدم. همیشه هم زیر عکس یا که داره با اسب می مینویسن افتخار این را داشتیم که از سال 1888 و به امروز از پسرانتان مردان جوان خوشفکر و ستودنی بسازیم مزخرف محزه. هیچ هم از این خبرانه نیست. کارشون هیچ فرقی با مدررسی دیگه نداره. باور کن بین بچه ها حتی یه نفر رو ندیدم که سودنی و خشف رو از این حرفها باشه. شاید کلاً دو نفر اینطوری باشن که اونا هم آدم حسابی بودنشون ربطی به مدرسه اینا نداره لابد قبل از اومدن به پنسی آدم حسابی بودن حالا همون شنبه بود که با ساکسون هال مسابقه فوتبال داشتیم برای بچهای پنسی مسابقه با ساکسون هال دیگه ته مسابقه بود آخرین بازی سال بود و زبون هم لالهگه پنسی نمیبرد بعد یه بلایی سر خودت میآوردی از این حرفا یادم ساعت سه بعد از ظهر بالای تپه تامسن کنار یکی از توپای عتیقه جنگ داخلی وایستاده بودن از اون بالا می کل زمین رو دید و هر دوتا تیم که اونطور به جون هم افتاده بودن غیر از من همه برای بچه های مدرسه اونجا بودن جایگاه تماساچی خوب پیدا نبود ولی صدای داد و بیدادشون رو می شد تیم همچین تیم پنسی رو تشفیق می کردن که نگو بچه های ساکسون حال ولی حس چون تیمشون مهمون بود و تماشاگر زیادی هم نداشت دخترها زیاد برای تماشا فوتبال نمی اومدن فقط سال ها اجازه داشتن با خودشون دختر بیارن هر جور حساب کنی مدرسه مزخرفی بود و هست دوست داشتم جایی درس میخونم که لاقل می توش هر ازگاهی چند تای دختر دید حالا نه اینکه دختراش کار خاصی بکنن همین که یه دستی دراز کنن یا دماغشون رو بگیرن هم خوب بود یا حتی کر کر بخندن یا اصلا هر چیز دیگه سلموترمر دختر مدیرمون برای دیدن بیشتر بازی‌ها میومد ولی خب از اون دخترای نبود که بگیرت تو باش با حال کنی البته دختر خیلی خوبی بود یه بار تو راه اگرستان تو اتوبوس کنار دستش نشستم و با هم یک گپی زدیم ازش خوشم اومد دماغش گنده بود و ناخوناش اونقدر جویده بود که گوشتش بیرون زده بود یه جورایی دلت به حالش میسوخت. حسن به خاطر چی ازش خوشم اومد خب شاید چون مثل باباش اهل کلاس ملاس نبود آره آره انگار خودش هم میدونست باباش چه حق باز شارلاتانیه حالا اینکه چرا من بجای اینکه اون پایین بشینم و مسابقه رو ببینم اون بالا بالاها یعنی رو همین تپه تامپسون وا ایستاده بودم به خاطر اینکه تازه با تیم شمشیر بازی از نیویورک برگشته بودم مربی تیم بودم از این حرفا پاپوس خیلی مهمی بود صبحی رفته بودیم نیویورک چون با تیم مدرسه مکبرنی مسابقه داشتیم یعنی مسابقه رف رو هوا همه بند و وسط بازی تیم توی مترو جامون البته همهش هم تقصیر من نبود هی hey, باید می دادم به اون نقشه کوفتی که بدونم کجا باید پیادشیم بخاطر همین شد حواظ وقتشم نزدیک های دونیم بعد از ظهر رسیدیم پنسی بعدشم با رأی اکثریت بچه های تیم اخراج شدم دلیل دیگرش همین بود که داشتم میرفتم رفتم از معلم تاریخمون آقای اسپنسر خدافزی کنم آنفلولانزا گرفته بود و گفتم تا موقعی شروع تعطیلات کریسمس دیگه نمیبینمش خودش یاداش گذاشته بود میخواد ببیندم. میدونست تصمیمم برای رفتن جدیه. راستی یادم رفتی بگم. اخراجم کردن. تو چهار تا از درس و نمره نیهورددم و اون هم گفتم بعد از تعطیلات دیگه بر نگردم اونجا. خودم هم زحمت کشیده بودم اصلا ثبت نام نکرده بودم. تا عواسته ترمم که مامان بابا اومده بودم پای یکی از سخنرانی های ترمر خرف به این میگفتن نام کنم و از این حرفا ولی نام بی نام. همین بهونه شد که از شهرم خلاص معمولا تو پنسی راحت از شهر آدمای هایی خلاص میشن پنسی رکورد خوبی تو اخراج دانش آموز زده رکورد خیلی خوبی حالا ماه دسامبرینا بود و هوا گدا کش. اگه بالیون تپه هم وایساده بودید که دیگه هیچی تادیه ژاکت پوشیده بودم، دستکش شالم نداشتم. هفته پیش یکی کت پشم شتری من از توی اتاق کش رفته بود. دسکش های پوست خزمم تو جیب همون کت پشم شتری بودن و آقا اونا رو برده بود. فنسی پر از دل دزده. چند چنتایی هستن که خونواداشون پول دارن ولی بقیه واقعا همه دل دزدن. باو کن هر چقدر مدرسه گرونتر، دل دزدیشم بیشتر. بیخیال من همینطوری با همون وزن کنار اون توپ مسخره وایستاده بودم و بازی رو تماشا میکردم و سر با هم قشنگ آب دماغمو و دندیل کرده بود ولی راستش همچین میخه بازی هم نبودم بیشتر برای این وایستاده بودم که یه جورایی از مدرسه خداافظی کنم. هرچی نبود داشتم از مدرسه و جایی میرفتم که قرار نبود برم من از این احساس خیلی بدم میاد. اصلا به درک خدافریش ناراحت کننده است مهم این بود که وقتی دارم از جایی میرم مطمئن باشم که جدی جدی دارم میرم چون اگه حسش نکنی حتی از خدافری هم دردناک تره یه جوره خر بودم که یهو یاد اون موضوع افتادم و حالیم شد که دارم از اینجا میزنم بیرون یادم اومد یه روز حوالی ماه اکتبر من و رابرت تیچر و پل کمپبل داشتیم دور ساختمون آموزشگاه مدرسه فوتبال بازی میکردیم بچه های خوبی هن، مخصوصا تیچنر قبل از شام بوده همه جاش تاریک می ولی ما همینطور برای خودمون بازی می کردیم. هم همه تاریک و تاریک تر شد. اونقدر که دیگه حتی چشممون توپ نمیدید ولی باز هم نمیخواستیم دست از بازی بکشیم. بالاخره تاریکی هوا مجبورمون کرد تمشا کنیم. آقای زامپسی معلم زیست شناسیمون بود کلاش از پنجره آورد بیرون و گفت وقت شامه. برگردیم خوابگاه شاید اگه شانسی هم یادم همچین موقعیت بیفتم راحتتر میتونستم توان خداافظی رو پیدا کنم. هرچی باشه همینشم هم از هیچی بهتره یعنی همین هم میتونه دلیل خوبی باشه برای رفتن. اینطوری بود که یاد این موقعیت افتادم. با خودم گفتم پس دیگه میتونم گازشو بگیرم و از تپه پایین برم و برسم به خونه آقا اسپنسر که توی خیابون آنتونی وین بود نه مدرسه. قموم راه و تا در ورودی خونه دویدم فقط یکم وایست دادم نفس تازه کنم راستش من زودی نفس کم میارم یه دلیلش اینه که بعد جوری سیگاریم یعنی بودم مجبورم کردن ترک کنم دعیلی دیگرشم اینه که پارسالیف و دهستانت قدم بلندتر شد برای همین بود که دیبی اومد و من برد دکتر و کلی چکاب شدم و از این حرفا ولی الان سالم سالمم بگذاریم من تا نفس گرفتم دوباره بدو رفتم جاده ۴ عین چی خ زده بودم و نزدیک بود همچین بخورم زمین که نگو. خودم هم من نمیدونستم چرا دارم میدمم فقط می باید با بودم همین جوری بی دلیل. از جاده که حت شدم احساس کردم دارم ناپدید میشم. آره آره غروبی همچین حالی داشتم هوا گ دو بود و خبری هم از آفتاب این حرفو نبود اصلا این کار از هر خیابونی حت می شدی احساس می کردی داری ناپدید میشی پسر تا پام رسیدم دم خونه آقای اسپنسر زنگی زنگ زدم قندیل بسته بودم گوشم دوش میترکید و انگشتم به زور تکون میخورد اونقدر که داد زدم بجانبین بجانبین یکی درو باز کنه آخر سر خانم اسپنسر جواب داد اونا خدمتکارو اینا ندارن همیشه خودشون جواب میدن و ازشون انقدری خوب نیست هولدن چقدر خوشحالم میبینمت بیا تو عزیزم از سرمو قندیل بستی نه یمونم یعنی از دیدنم خوشحال شد از من خوشش میاد لاقل من اینطوری فکر میکنم پسر نمیدونی با چه عجله خودم رو پرت کردم تو حالتون چطور خانم اسپنسر آقای اسپنسر چطورن کتتو بده آویزون کنم عزیزم نشنید حالا آقای اسپنسرو پرسیدم گوشش بگینهگی سنگینه کتما به جالباسی راه رو آویزون کرد موهامو با دستم دادم اقرب این مدل کلاغی زده بودم از اینا که دورو میزنن و بالا و زیاد کتا بخاطر به لازم نبوده شونش کنی دوباره پرسیدم حالتون چطوره خانوم اسپنسر منتها بلندتر از قبل که بشنوه در جالباسیو که می بست گفت حالم خوبه هلدن تو چطوری از لحنش در فهمیدم آقای اسپنسر قضیه اخراج شدن و بهش لو داده خوب هم آقای اسپنسر چطورن؟ سرما خوردگیشون خوب شده؟ بیخیالشه. خیالشه همچین رفتار میکنه انگاری هیچ چیش نیست نمیدونم چرا تو تا داشته عزیزم برو پیشش